به نام خدا داستان دختر اولی به تو میگم این قصه از قصه های جن و پری و سحر و جادویی است پیام آن عشق مادر به فرزند است که هیچگاه از بین نمی رود و در اون مایه آن تغییر ناپذیری تقدیر است این قصه را از روی کتاب چاپ نشده فرهنگ مردم استحبان که تعلیف و گردآوری آقای محمد رزا آل ابراهیم است نقل میکنیم کتابی که درباره عقاید و رسوم مردم گوشه از سرزمین ایران است. در زمانهای گذشته یه زنی بود که دست به هر کاری زده بود تا بچه دار بشه. هرچی هم که دوا درمون کرده بود که بچه دار بشه نشده بود. یه درختی بود به نام درخت کنار که خواسته و آرزوی مردم رو برآورده میکرد. مثل ننه و بچه صابونات، مردم بهش دخیل میبستن و اون آرزوهاشون رو برآورده میکرد. زن به درخت کنار گفت ای درخت بیا و آرزوی من هم براورده کن و اگه من بچه دار بشم دختر اولم برا تو باشه. بعد اون زن یه تیکه پارچه رو به شاخه درخت کنار بست و رفت چند سالی گذشت و خدا بهش سه تا دختر داد روزی از روزها مادر کوزه آبی به سه تا داد و گفت برین و از سر رودخونه آب بیارید کوزه رو که پر کردن و میخواستن برگردن یه دفعه صدایی به گوششون اومد که دختر اولی به تو میگن دختر دومی به تو نمیگم، دختر سومی به تو نمیگم. به ننت بگو وعده ای که دادی بیا عمل کن. دختر هرچی این ور اون رو نگاه کرد چیزی ندید. کوزه ای روی کولش گذاشته بود شکست. به خونه اومدم. اتفاقی که افتاده بود و برای مادر گفتن. روز بعد که برای آوردن آب میرفتن، مادر به دختر اولی گفت تو در وسط دو تا خواهرات به سر رودخونه رفتن که آب بردارن. دختر اولی کوزهشو به کول گرفت که همون صدا بلند شد و گفت دختر اولی به تو نمیگم. دختر دومی به تو میگم. دختر سومی به تو نمیگم. به مادرت بگو ای که دادی بیا و عمل کن. دختر بازم هرچی چی اینور اونورشو نگاه کرد چیزی ندید. کوزه که روی کولش گذاشته بود شکست. دختر را به خونه اومدن اتفاقی که دوباره افتاده بود و برای مامانشون گفتن مادر هرچی فکر کرد بازم چیزی به یاد نیاورد. روز سوم که برای آوردن آب میرفتن، مادر به دختر اولش گفت امروز تو بعد از دو تا خواهرات قرار بگیر یعنی سومین نفر. به سر رودخونه رفتن که آب بردارم. دختر اولی کوزش رو که به کول گرفته بود بازم همون صدا رو شنید که دختر اولی به تو نمیگم. دختر دومی به تو نمیگم. دختر سومی به تو میگم. به ننت بگو عهدی که بستی رو وفا کن. بازم دختر هرچه این ور و اون ورش رو نگاه کرد چیزی ندید. کوزه ای که روی کولش گذاشته بود شکست. به خونه برگشتم و سومین اتفاق رو هم برای مادر توضیح دادم. مامان خیلی فکر کرد تا به یادش بیاد که به درخت کنار چه قولی داده؟ و به یادش اومد. به دختر لباس زیبایی پوشوند و، دستش رو گرفت و، بردش پای درخت کنار همونجا گذاشتش. یه چند قدمی از درخت دور نشده بود که درخت شکافته شد، باز شد و یک جوان بسیار آراسته و زیبا از توش در اومد و دختر رو با خودش برد مادر به خونه اومد و شب و روز گریه می کرد پدر از دوری دخترش لباس درویشی پوشید و به کوه و دشت و بیابون و صحرا و شهر و روستا و هر جا که به ذهنش می اومد رفت. همه جا رو زیر پا گذاشت تا به یک منزل بسیار باشکوه و, و زیبا رسید که هیچ چیزی از قصر یک پادشاه کم نداشت. جلوی خونه ایستاد و شروع به خوندن کرد. زن سابخونه در و باز کرد و یه ظرف غذایی رو به طرف درویش دراز کرد درویش یه انگشتری تو دست زندی اون انگشتری به چشمش آشنا اومد این انگشتری رو یه روزی خودش به دخترش داده بود درویش که همون پدره بود پرسید این انگشتری رو از کجا آوردی دختره گفت چرا این پرسش رو از من کردی درویش همه حال و حکایت خودش رو برای دختر توضیح داد. دختر دستش رو گرفت و به داخل خونه برد و گفت من دخترش شما هستم. پدر خوشحال شد، دخترش رو در آغوش گرفت و هر دو از خوشحالی گریه کردند. دختر برای مادر و دوتا تا خواهرش پیغام فرستاد و اونها رو هم به نزد خودش آورد و همگی زندگی خوب و خوشی رو با هم شروع کردند دختر اولی به تو میگم فرهنگ مردم استحبان تعلیف و گردآوری محمد رزا آل ابراهیم راوی سید اماد و دین منتصری کتاب چاپ نشده است شنوندگان عزیزم امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و امیدوارم در داستان بعدی هم منو همراهی کنید همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم سفر به دنیای پر رمز و افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها هایی از جادوگرها سفر به سرزمینهای جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا. همه در در اینها و بیش از اینها،